اعون بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الحمد لله رب العالمین ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است الرحمن الرحیم بخشنده مهربان است مالک یوم الدين. مالک روز جزا است. ایا که نعبد و ایا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. اهدنا الصراط ما را به راه راست هدایت کن صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين راه کسانی که بر آنان نعمت دادی نخاش گرفتگان و نا گمراه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 الف لام مین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدا للمتقین این کتابی است که هیچ شکی آن نیست و مایه هدایت پرهیزگاران است الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون آن کسانی که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا می‌دارند و از آن چه روزیشان داده این انفاق می‌کنند وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إليك وما وَمَا من مِنْ قَبْلِكَ هم يُوقِنُونَ و آنان که به آن چه بر تو نازل شده و آن چه بر پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان میآورند و به روز رستاخیز یقین دارند اولائك علی هدى من ربهم والائك هم المفلحون آنان بر هدایت از جانب پروردگارشانند و آنان رستگارانند این الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون كثاني كافر شدند برایشان یکسان است که آنان را بترسانی یا نترسانی ایمان نمیآورند آوردند الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم و ولهم عذاب عظیم خدا بر دلها و گوش هایشان مهر زده است و بر چشم هایشان پرده ای است و برای آنها عذاب بزرگی ومن من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و هم بمؤمنین گروهی از مردمان هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آبرده ایم در حالی که ایمان ندارن یخادعون الله والَّن آمن وما ياخدعون إووسهم وما يشعرون. آنان به نظرشان خدا و مؤمنان را فریب میدهند در حالی که جز خودشان را فریب نمیدهند ولی نمیفهمند یَقُولُونَ بِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ در دلهای آنان بیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغ‌هایی که می‌گفتند برایشان عذاب دردناکی است وإذا اذا قیل لهم لا تفسدو فی الارض طالو انما نحن مفلحون و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند ما فقط اصلاح کننده ایم الا انهم هم المفسدون ولیکن لا یشعون آگاه باشید آنها همان مفسدانند بلی نمی فهمند و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء ألا ان هم, هم لا و هنگامی که به آنان گفته شود ایمان بیاورید چنان که مردم ایمان آورده اند آیا ایمان بیاوریم، چنان که بیخردان ایمان آورده اند؟ آگاه باشید آنها همان نابخردانند ولی نمی دانند. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می‌کنند می‌گویند ما ایمان آورده ایم و هنگامی که با شیطان های خود خلوت می کنند میگویند ما با شما ایم ما فقط آنها را مسخره می کنیم الله یستهزئ بهم و فی آنان را مسخره می کند و آنها را در تغیانشان نگه میدارد تا سرگردان شوند اولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آنان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریدند پس تجارت آنها سودی نداد و هدایت نیافتند مثلهم کمثل الذی نارا فلم ما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله و وتركهم في ظلمات لا يبصرون داستان اینان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته پس چون آتش اطراف او را روشن ساخت خداوند نورشان را بگرفت و در تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد صم بکم عمی فهم لا یرجعون کرانند، گنگانند، کورانند، پس باز نمیگردند گردند او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ من الصواعق حذر الموت والله مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ یا همچون بارانیست که از آسمان فروریزد و در آن تاریکی ها برعد و برق باشد و آنها از ترس مرگ انگشتان خود را در گوشهایشان فرو میبرند تا صدای سائقه را نشنوند و خداوند به کافران احاطه دارد یكاد البرق یخطف ابصارهم كُلَّمَا أضاء لهم مشوا فیه وإذا أظلم عليهم قامو و لو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم این الله على كل شيء قدیر نزدیک است که برق چشمانشان را برو هرگاه که برای آنها روشن شود در روشنایی آن راه میروند و چون تاریک شود در جای خود به ایستند و اگر خدا بخواهد گوش و چشمانشان را از بین میبرد چرا که خداوند بر هر چیز تواناست یا ایوهن الناس اعبدو ربكم الَّذِي خلقكم وَالَّذِينَ من قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تتقون ای مردم پروردگار خود را پرستش کنی آن کسی که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگار شوید الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون آنکس که زمین را برای شما بگسترد و آسمان را همچون سختی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن انواع میوه را به وجود آورد تا روزی شما باشد بنابراین برای خدا هم قرار ندهی در حالی که میدانی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسوره فاتو بتوره من مثله وادعوا شهداء اسم من دون الله ان کنتم صادقین و اگر در باری آن چه بر بنده خود نازل کرده این در شک و تردید هستی سوره ای همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا فراخانید اگر راست میگویید و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره و عدت للكافرین پس اگر چنین نکردید و هرگز نتوانید کرد از آتشی بترسید که هیزم آن مردم و سنگ هاست و برای کافران آماده شده است و بشری الذین آمنوا و عمنوا الصالحات ان لهم جن تَجِرِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقَ أَنْقَلَبُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوبِي هِمْ مُتَشَابِهَهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ با هم فيها خالدون. به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند مجدده که باغهایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختان آنجاری است. هر زمان که میوه ای از آن به آنان داده شود گویند، این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود و میوههایی همانند آورده شود. و برای آنان همسرانی پاکیزه است و در دران خواهند بود این الله لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فا اما الذین آمنوا انه الحق <تصفيق> من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثير ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين براستی خداوند از اینکه به پشعی یا بالاتر از آن مثال بزند شرم نمی‌کنند. آنان که ایمان آورده اند می که آن مثل حق است از طرف پروردگارشان و اما آنهایی که کافرند می‌گویند خداوند از این مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می و تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون تسانی که خدا را پس از محکم ساختن آن میشکنند را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در روی زمین فساد می کنند اینها زیان کارانند کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم إليه ترجعون چگونه به خداوند کافر میشوید در حالی که شما مردگان بودید و او شما را زنده کرد سپس شما را می میراند. سپس شما را زنده می کند. آنگاه به سوی او بازگردانده می شوید. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم او خداییست که همی آنچه را که در زمین است برای شما آفرید آنگاه آهنگ آسمان کرد و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او بر هر چیز آگاه است و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك و لك قال اینی اعلم ما لا تعلمون و بیاد بیاور هنگامی را که پربردگارد به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار خواهم داد گفتند آیا کسی را در آن قرار می دهی که در آن فساد و خونریزی ریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو را به جامعی آوریم و تو را تقدیس میکنیم. پروردگار فرمود یقینا من میدانم دانم آنچرا که شما نمیدانید. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبیونیم و قال انبیعونی بی اتمائی ها این کنتم صادقین و نامها را همگی به آدم آموخت سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست نامهای اینها را به من خبر دهید قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اینک انت العليم الحكيم فرشتگان گفتند منزهی تو ما چیزی جز آنچه به ما آموخت اینه تو دانای حکیمی قَالَ وَأَلَيَّأَ آدَمُ أَن بِهِ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبأهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لكم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون فرمود ای آدم آنان را از نامهایشان آگاه کن هنگامی که آنان را آگاه کرد خدا بند فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمن ها و زمین را میدانم و نیز میدانم آنچرا که آشکار می‌کنید و آنچرا پنهان می‌داشید و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلیس أبا واستكبر وكان من الکافرین یاد بیاور هنگامی را که به فرشتگان گفتین برای آدم سجده کنید پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر برزی و از کافران شد و قلنا یا آدم اسکم انت و زوج کل و منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از میبه های آن هر جا می گوارا بخوری ولی کن به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد فَأَذَلَّهُمَ الشیطان عَنْهَا فَأَفْرَجَهُمَا مما مَا كَانَا فِيهِ وَقُلْ نَهْبِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو و فی الارض مستقر و متاع الاحين. پس شیطان موجب لغزش آن دو شد سپس آنان را از آن در آن بودند بیرون کرد و گفتیم همگی به زمین فرود آیی در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و به وسیله بهرهبرداری خواهد بود فَتَلَقَّى آدم مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و خداوند توبه او را پذیرفت چرا که خداوند توبه پذیر مهربان است قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون گفتیم همگی از آن فرود آی پس هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه قمگین خواهند شد والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون کسانی که کافر شدند و نشانه ما را دروغ پنداشتند، آنان اهل دوزخند و همیشه دران خواهند بود. یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتیلکی انعنتو أنعمت و وأوفوا بی عهدی، و اوفو بی عهدی، اوفی ای فرزندان اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم بیاد آورید و به پیمانی که با من بست اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. و بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا و ایا فاتقون و به آن چه نازل کرده ام ایمان بیاورید که تصدیق کننده چیزی است که با شماست و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و تنها از من بترسید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون حق را به باطل نمیایید و حق را پنهان نکنید در حالی که میدانید و اقیموا وآت و اتوا الزکات و مع و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگذاران نماز, نماز بخوانی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون آیا مردم را به نیکی فرمان میدهید و خودتان را فراموش میکنید در حالی که شما کتاب آسمانی را میخوانی آیا نمی اندیشید و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها على الخاشعین شکیبایی و نماز یاری جوید و نماز جز بر فروتران دشوار و گران است الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا ربهم هم إليه راجعون آن کسانی که یقینند دیدار کننده پروردگار خیشند و به سوی او باز میگردند گردند یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی الکی انعمت علیکم و ای فرزندان اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا يُقُبَلُ منها شَفَاعَتٌ ولا يُؤْخَدُ منها عدل ولا هُمْ يُنصَرُونَ و از روزی بترسید که کسی از کسی کفایتی نکند و از او شفاعت پذیرفته نمی شود و نه از او تابان و فدیه گرفته می شود و نه یاری می شود.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 و نیز به یاد آورید هنگامی که شما را از شنگال فرعونیان نجات دادیم. آنان شما را به بدترین صورت آزار و شکنجه میدادند. پسران شما را سر میبریدند و زنان شما را زنده نگه می داشتند و در اینها آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان برای شما بود. و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و تنظرون و بیاد آورید هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم در حالی که شما مینی گریستید. و اذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم استقتم العجل من بعده و انتم ظالمون. به یاد آورید هنگامی را که با موسی چهل شب بعد گذاردیم آنگاه شما بعد از زوج موسی را به پرستش گرفتید در حالی که ستم کار بودید. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. سپس شما را بعددان بخشیدین شاید سپاس گذاری کنین و ایز آتينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تهتدون و نیز به یاد آورید هنگامی را که به موسی کتاب و پرقان را عطا کردیم تا اینکه هدایت شدید و ایز قال موسی لقومه یا قوم اینکم ظلمتم انفسکم بی اتخاذکم فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا اَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُو هُوَ الرَّحِيمُ و بیاد آورید زمانی را که موسا به قام خود گفت ای قام من، شما با به پرستش گرفتن گوساله ساله به خود ستم کرده اید پس به سوی آفرید گار خود بازگردید و توبه کنید و خود را بکشید این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است آنگاه خداوند توبه شما را پذیرفت، زیرا که او توبه پذیر مهربان است و ایز قلتم یا موسی لن نؤمن لکه حتی نرالله جهرتا فأخذتکم الصاعقه, فأخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون و به آورید هنگامی را که گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم پس سائق شما را فرا گرفت در حالی که مینی گریستید ثم من بعد موتكم لعلكم سپس شما را پس از مردنتان برانگیختیم شاید سپاسگزاری کنیم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ظلمون وأبر را بر شما صايبا قرار دادیم و من و را بر شما فرو فرستادیم و گفتیم از پاکیزهایی که به شما روزی داده این بخورید آنها به ما ستم نکردن بلکه به خود ستمین مودن و ایز قل ندخلو ها دیه القرية فکلو منها حیث شئتم رغدا و دخلوا الباب و دخولوا الباب سجدا و قولوا حطتن نغفر لکم خطایاکم و المحسنین و به یاد آورید هنگامی را که گفتیم به این شهر وارد شوید و از نعمتهای آن از هر جا که میخواهید به فراوانی بخورید و با خشوع و فروتنی به دروازه درایید و بگویید خواسته ما آمرزش گناهان است تا گناهان شما را ببخشین و به نیكوكاران فزونتر میبخشین فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون انگاه ستمگران این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند لذا بر ستمگران در برابر این نافرمانیشان عذابی از آسمان نازل کردیم و اذ تسقام موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عینا، قد علم كل اناث مشربهم کلو و شربو من رزق الله ولا تعتو فی الارض مفسدین و بیادا برید هنگامی را که موسی برای قوم خیش آب خواست پس گفتیم عصای خود را بر سنگ بزن آنگاه دوازده چشمه آب از آن جوشی و هر گروهی آبش خور خود را دانست و گفتیم از روزی خدا بخورید و بیا شامید. وَدَرْزَمِنْ بِتَبَاؤِهِ مَكُوشِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَّصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتَسْبَدُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ قَيِّمٌ إِهْبِطُوا مِصْطَرَفًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا تَأْلَتُمْ وَظُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تبياد آورید زمانی را که گفتید ای موسی ما هرگز بر یک نوع قضا شکیبایی نداریم پس پروردگار خیش را بخوان تا از آنچه زمین میرویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد موسی گفت آیا چیزی را که پستر است به جای چیزی بهتر جایگزین گذین به شهری فرود آیید زیرا آنچرا خواستی در آنجا برای شما هست و ذلت و بینوائی بر آنان زده شد و سزاوار خشم خدا گردیدند چرا که آنان به آیات خدا کفر می و پیامبران را به ناحق می کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجابز بودند. اینالذین <تصفيق> آمین والذین هادونا صرا و الصابین من آمین بالله واليوم الاخر وعمل اصالح فلهم اجرهم فَلَهُمْ عَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ به درستی کسانی که ایمان آورده و کسانی که یهودی شدند و نصارا و سابعان آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه قمگین خواهند شد وإذ أخذنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما ما فیه لعلكم تتقون و بهیاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه تور را بالای سر شما برفراشتیم و به شما گفتیم آنچه را به شما دادیم با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است یاد کنید شاید پرهیزگار گار شوید. ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم و رحمته لکنتم من الخاسرین سپس شما بعد از این روی گرداندید پس اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران بودید ولقد علیمتم الذین اعتدو منکم فی السبت فقلنا لهم کونو قربتا خاسئین بیگمان، شما از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و تجاوز کردند آگاه شده اید. پس ما به آنها گفتیم، بوزینهای خار و رانده شده باشید. فجعلناها نکالا لما ما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمستقیم. پس ما این کیفر را عبرتی برای مردم آن زمان و نسلهای بعد از آن و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم. و قال موسی لقومه این الله یأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوات بالله و به یاد آورید زمانی را که موسی به قام خود گفت خداوند به شما دستور می دهد که گاوی را زبه کنی گفتند آیا ما را مسخره می کنی موسی گفت به خدا پناه می از این که از نادانان باشم قال دعو لنا ربک یبین لنا ماهی قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِغٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكِ فَاسْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ گفتن از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند که آن گاوی است. موسا گفت خداوند می فرماید آن است که نه پیر و نه جوان بلکه میان سالی بین این دو باشد پس آنچه به شما دستور داده شده است انجام دهید قال دعو لنا ربك یبین لنا ما لونها قال انهو یقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر ناظرین گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد رنگ آن چگونه است، موسا گفت آن گاوه زرد پر رنگی است که بینندگان را شاد می کند. والدع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شبهه علينا وان ما ان شاء الله لمهتدون گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد که آن چه گونه گاوی است به این گاو بر ما مشتبه شده اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تفتي الحرف مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسی گفت خداوند میفرماید. آن گاویش که نبرای شوخ زدن رام شده و نبرای زراعت آب کشی بی بیعیب است و یک رنگ و دران خالی نیست، گفتند، اینک سخن درست آوردی، پس را سر بریدند و نزدیک بود که این کار نکنند. با قاتن تو نفسن فدعات تو فها وله و مخرجون مکن تو و بیاد آورید هنگامی را که فردی را کشید آنگاه در باری او به نظ پرداختید و خداوند آشکار کننده آن چیزی است که پنهان میکردید وقلنا اضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون پس گفتیم پاری از گاو را به مقتول بزنی خداوند این گونه مردگان را زنده میکند و نشانه های خود را به شما مینمایاند شاید اندیشه کنید ثم قد صدقت بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأمطار. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّفَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِقُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سپس بعد از این دلهای شما سخت شد همچون سنگ یا زیرا که پاره ای از سنگها می و از آنها نهرها جاری می شود و پاره ای از ترس خدا فرو می افتد و خداوند از آنچه چه قافل نیست. افتطمعون این یؤمنون یؤمنوا وقد وقد کان فریق منهم یسمعون كلام الله ثم یحرفونه. ثم یحرفونه من بعد ما و وهم یعلمون آیا امید دارید که به آیین شما ایمان بیاورند با اینکه گروهی از آنان سخن خدا را میشنیدند و پس از فهمیدنش آن را تحریف میکردند و حالا این که علم و اطلاع داشتند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 افلا و چون با مؤمنان ملاقات کنند گویند ایمان آورده ای ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می کنند میگویند چرا مطالبی را که خداوند برای شما بیان کرده برای مسلمانان بازگو می کنید تا در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما به آن استدلال کنند آیا نمی او ولا علمون ان الله اعلم ما و مایسی و مایلیون آیا نمیدانند که آنچه را پنهان میدارند و آنچه را آشکار می کنند خداونند می میدانند ومنهم لا الكتاب و, و برخی از آنان بیسادانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی دانند و تنها به پندارهایشان دل بستند.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 پس وای بر کسانی که با دست خود می نویسند، سپس میگویند این از جانب خداست تا آن را به بهای اندک بفروشند پس وای بر آنها از آنچه دستهایشان نوشته و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می‌آورند و قالوا لن تمسنا النار الا معدوده اول اتقنتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون گفتند آتش دوزخ جز چند روز محدودی هرگز به ما نخواهد رسید بگو آیا از نزد خدا پیمانی گرفته اید که خدا هرگز خلاف پیمانش نکند یا چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت میدهید بله بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فأولائی که النارهم فيها خالدون آری هر کس که مرتکب گناه شود و گناهانش او را احاطه کنند آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا احسانو و ذِل قرب و اليتما و المساكين وقولوا للناس حسنو و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تو إلا قليلا منكم وأنتم معرضون زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدای یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و به مردم نیک بگویید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید سپس همه شما جز اده کمی پشت کردید و روی گردان شدید وإذ از اخدنا لا تسفیکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون و بیاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتین که خونهای همدیگر را نریزید و یک دیگر را از سرزمین خود بیرون نکنی سپس شما اقرار کردید و شما بران پیمان گواهی میدهی ثم انتم ها اولئی تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا من دیارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك من انكم الاخذ في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد و گروهی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می‌کنید و علیه آنها به گناه و ستم یکدیگر را کمک می‌کنید و اگر اسیران نزد شما آیند فدیه دهید و آنان را آزاد می‌کنید و حال اینکه بیرون کردن آنان بر شما حرام بود آیا به بخشی از کتاب ایمان نیاورید و به بخشی کافر میشوید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند چیست جز رسوایی و خاری در این جهان و در روز قیامت به شدید ترین عذاب برگردانیده میشوند و خداوند از آنچه انجام دهید غاپل نیست اولائی که الذین اشتروا الدنيا الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای آخرت خریدند پس عذاب آنها تخفیف داده نمی و کسی آنها را یاری نخواهد کرد ولقد آتینا موسى الكتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیس بن مریم البینات و بروح القدس اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا اَنفُسُكُ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ به درستی که به موسی کتاب دادیم و بعد از او پیانبرانی پشت سر هم فرستادیم و به عیسی پسر مریم موجزه ها و دلایل روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم آیا هر زمان پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید پس گروهی را تکذیب کرده و گروهی را کشتید و قالوا قلوبنا غُل بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون و گفتند دلهای ما در پرده است بلکه خداوند آنان را به خاطر کفرشان نفرین کرده است پس اندکی ایمان می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 و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که تصدیق کننده چیزهایی بود که با خود داشتند و پیش از این بر کافران خواستار پیروزی بودند پس چون را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد به او کافر شدند پس لعنت خداوند بر کافران باد بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بريا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب ولی کافرین عذاب مهین چه بده از چیزی که خود را به بهای آن فروختند و از روی حسد به آنچه چه خدا فرستاده بود کافر شوند که چرا خداوند از فضل خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می کند پس سزاوار خشمی بر خشمی دیگر شدند و برای کافران عذاب خار کننده است.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 قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان كنتم مؤمنین و چون به آنها گفته شود به آن چه خداوند نازل کرده ایمان بیاورید میگویند ما به چیزی ایمان میآوریم آوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر می شود. در حالی که آن حق است و تصدیق کننده چیزی است که با خود دارند بگو اگر راست میگوید و مؤمنید پس چرا پیامبران خدا را پیش از این نکشتید ولقد جاءکم موسی بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون و به راستی موسا ها و نشانه روشنی برای شما آورد و آنگاه شما پس از بی گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمگر بودید و از اخدنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خدوم آتیناكم بقوت و اسمعوه قالوا سمعنا وعصینا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما یأمركم به یمانكم كنتم منن و بهیاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه تور را بالای سر شما برافراشتیم و گفتیم « آنچه را به شما داده این محکم بگیری و بشنوی گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم. و دلهایشان اثر کفرشان با محبت گوساله آمیخته شد بگو ایمانتان چه فرمان بدی به شما میدهد اگر شما مکمن هستید. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین بگو اگر سرای آخرت در نزد خدا مخصوص شماست نه سایر مردم پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگویی ولین یتمنو ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین ولی آنها به خاطر آنچه چه هایشان پیش فرستاده است هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد وخداوند به ستمگران داناست <تصفيق> ولا تجدنهم احرفا الناس على حياه ومن الذين اشركو يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو من العذاب أن يعمر والله بطير ما يعملون و هر آينه آنان را حریص ترین مردم بر زندگی خواهی یافت هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند در حالی که اگر این عمر دراز به او داده شود او را از عذاب دور نمی‌کند و خداوند به آنچه می‌کنند بیناست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 کسی که دشمن جبرئیل باشد در حقیقت دشمن خداست زیرا که او به فرمان خداوند قرآن را بر قلبتو نازل کرده است در حالی که تصدیق کننده آنچه پیش از آن است و برای مؤمنان راهنما و مژده است. مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کسی که دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل باشد پس به درستی که خداوند دشمن کافران است وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ به هر آینه که ما نشانه های روشنی بر تو نازل کردیم و جز فاسقان کسی به انها کفر و کلما عاهد و عهدن نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون آیا چون نیست هرگاه آنها پیمانی بستند گروهی از آنان آن را دور افکندند بلکه بیشترشان ایمان نمیآورند آورند و لما منعند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتو الكتاب كتاب الله و ظهورهم كأنهم لا يعلمون و هنگامی که ای از جانب خدا به سویشان آمد که تصدیق کننده آنچه با خود داشتند است گروهی از آنان که به آنها کتاب داده شده بود، کتاب خدا را پشت سرشان افکندند، گویی آنان نمی دانند. و ما علی ملک سلیمان. وما كفوا سليمان ولكن الشياطين كفرو يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة بباب لها روت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 لو کانو و از آنچه شیاطین در عهد فرمان روای سلیمان بر مردم می پیروی کردند و در حالی که سلیمان هرگز دست به سهر نیالود و کافر نشد ولی کن شیاطین کفر برزیدند به مردم سهر آموختند و از آنچه برد فرشته هارود و بمارود در بابل نازل شده بود پیروی کردند و آن دو فرشته به هیچ کس چیزی یاد نمیدادند مگر اینکه از پیش به او گفتند ما وسیله آزمایشیم پس کافر نشو پس از آن دو فرشته چیزهایی می‌آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیافکنند و حال آنکه بدون اجازه خداوند نمیتوانند به وسیله آن به کسی زیانی برسانند و چیزی میآموختن که به آنان زیان میرسانید و به آنان سودی نمیداد و قطعا میدانستند که هر کس خریدار آن باشد در آخرت بهره ای نخواهد داشت و چه بد و زشت است آنچه خود را به آن فروختند اگر میدانستند ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو كانوا یعلمون و اگر آنها ایمان میآوردند و پرهیزكاری میکردند همانا پاداشی از نسد خدا بهتر بود اگر میدانستند یا ایوها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا و اسمعوه عذاب علیم ای کسانی که ایمانا برده اید در گفتگو با پیانبر نگویید راعنا بلکه بگویید انظرنا و بشنوید و برای کافران عذاب درد است ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم کافران از اهل کتاب و مشکان دوست ندارند که از جانب پروردگارتان خیر و برکتی بر شما نازل گردد در حالی که خداوند رحمت خود را بر هر کس بخواهد اختصاص می دهد و خداوند دارای فضل بزرگ است مانن سخ من آیت که ها نأسی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير هر آیه را نسخ کنیم یا فراموش گردانیم بهتر از آن یا همانند آن را می آیا نمیدانی که خداوند بر هر چیز تواناست فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ آیا نمی که فرمان روای و زمین از آن خداست و جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست؟ أم تریدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل آیا میخواهید از انبر خود درخواست كنید كه یش از این از موسها خواسته شد و کسی که کفر را به جای ایمان برگذینه مسلمان راه راست را گم کرده است ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو وصفحو حتی يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدیر بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در وجودشان است آرزو دارند که شما را بعد از ایمانتان به حال کفر بازگردانند پس از اینکه حق برای آنها روشن شده است پس شما عفت کنید و درگذرید تا خداوند فرمان خیش را صادر نماید همانا خداوند بر هر چیزی تواناست و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کار نیکی را که برای خود از پیش میفرستید آن را نزد خدا خواهید یافت یقینا خدا به آنچه میکنید بیناست وقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانیهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین و گفتند هرگز داخل بهشت نخواهد شد جز كسی كه یهودی یا مسیحی باشد این آرزوهای آنهاست بگو اگر راستگویی دلیل خود را بیاورید بله من اسلم وجهه وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اوری کسی که مخلصانه روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد پس پاداش عین نزد پروردگارش محفوظ است و نترسی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند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 فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون یهودیان گفتند مسیحیان بر نیستند و مسیحیان گفتند یهودیان بر نیستند در حالی که آنان کتاب را می‌خوانند همچنین کسانی که نمیدانند همانند آنان گفتند پس خداوند روز قیامت در آنچه که در آن اختلاف داشتند میان آنان داوری می ومن و من اظلم من منع مساجد الله این یذکر فی هسمه و فی خرابها، اولئی ما كان لهم این يدخلوها الا خائفین لهم في الدنیا خزی ولهم لهم فی الاخره عذاب عظیم و کیست ستمکار از آن کس که مسجدهای خدا را باز داشت که در آن نام خدا برده شود و در ویرانی آنها کوشی شویسته آنان نیست جز به حال ترس وارد این مساجد شوند بحره آنان در دنیا خاری و رسوایی و در آخرت عذاب بزرگی است. ولله المشرق والمغرب فا تولوا تواللو فتم وجه الله ان الله واسع علیم مشرق و مقرب از آن خداست پس به هر سورو کنید روی خدا آنجاست همانا خداوند گشایشگره داناست وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض كل له قانتون گفتند خداوند فرزندی برای خود برگزیده است منزه است او بلکه آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و همه فرمانبردار اویند بدیع السماوات والأرض وإذا قضا أمرا فإنما یقول له كن فیكون آسمان آسمانها و زمین است و چون بکاری اراده فرماید تنها به آن میگوید باش پس میشود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 و آنان که نمیدانند گفتند چرا خدا با ما سخن نمیگوید و یا چرا معجزه و نشانه ای برای ما نمی آید؟ کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین گونه سخن می گفتند دلهایشان به یک دیگر است همانا ما آیات و نشانه ها را برای گروهی که یقین دارند آشکار و روشن ساخته اِنَّا ارسلناك بالحق بشيرا وَنَذِيرًا ولا تُسْأَلُ عن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ همانا ما تو را به حق مجدرسان و بیم دهنده فرستادین و در دوزخیان از تو پرسیده نخواهد شد وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ وَلَن وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير بهرگز یهود و نصارا از خشنود نخواهن شد با اینکه از آین آنان پیروی کنی بگو همان هدایت خدا تنها هدایت است و اگر از خواستهها و آرزوهای آنان پیروی کنی بعد از اینکه دانشی به تو است هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود الذين آتینهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولاءک يؤمنون به ومن يكفر به فاولاءک هم الخاسرون کسانی که کتاب آن را چنان که شایسته آن است می‌خوانند آنها به آن هدایت ایمان می‌آورند و کسانی که به او کافر شوند پس بیگمان ایشان زیانکارانند یابنی اسرا اذكروا التي عليكم و انی فضلتكم ای تو و على اسرائیل نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید و نیز آنکه من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم. و اتقو يوم الّا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعت ولا هم ينصر. و الزروزي بترسيل كسي از كسي هیچ كفايت نكند و هيج جون تابان و فدی و شفاعت او را سود نمی دهد و یاری نمی شدند و اذ بتلا ایبراهیم ربه بكلمات فأتمهن قال اینی جاعلك للناس اماما قال ومن من قال لا ينال و بی یاد آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با سخنانی آزمود پس او همه را به خوبی به انجام رسانید خداوند به او فرمود به درستی که من تو را پیشوای مردم قرار میدهم. ابراهیم گفت و از فرزندانم خداوند فرمود پیمان نمیرسد. و عهد من به ستمکاران نمی رسد و اجعلنا البيت مثابة للناس و واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم و اسماعيل ان طهر بيتي آ طهرا را ب پای ف و به یادآورید هنگامی که خانی کعبه را محل بازگشت و جای امنی برای مردم قرار دادیم و از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود برگیرید و ما به ابراهیم و اسماییل بحید کردیم که خانه مرا برای تواف کنندگان و مقیمان و رکوع و سجود کنندگان پاک و پاکیزه کنید و اید قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا و ارزق من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم وبئس یاد آورید هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری امن بگردان و آن را کسانی که از ایشان به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند، از میبه های گوناگون روزیده، خداوند فرمود، و هر کس که کافر شود، اندکی بحر مندش می سازم سپس او را به عذاب آتش می و بد سرانجامی است. و ایز یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك أنت السمیع العليم و بیادا ورین هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایههای خانه خانی را بالا می بردند و میگفتند پروردگارا از ما به پذیر هماناک توی شنوای دانا. ربنا وجعلنا مسلمين لك و ذُرِّيَّتِنَا ذريتنا مُسْلِمَةً لَكَ لك مَنَاسِكَنَا مناتكنا وارنا مناتكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. <تصفيق> ما را فرمنبردار خودت قرار ده و از فرزندانمان امتی فرمنبردار خود پدید آور و طرز عبادت من را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر به درستی که تو توبه پذیر مهربانی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم فروادگارو در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیزد تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را پاکیزه کند همانا که تو پیروزمند حکیمی و من یرب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه في الدنيا و, في الاخرة لمن الصالحين. و چه کسی از آین ابراهیم روی گردان خواهد شد جز کسی که خود را به نادانی و سبکسری افکند و به درستی که ما او را در دنیا برگزیدیم، و همانا او در آخرت از شای سگان است اذ قال له ربه اتلم، قال لرب آنگاه که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو، گفت برای پروردگار جهانیان تسلیم شدم ووصی بها ابراهیم بنیه ویعقوب يا بنی إن الله اصطفی لكم الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون به و ویعقوب فرزندان خود را به این آئین سفارش کردند ای فرزندان من خداوند این آین را برای شما برگزیده است پس نمیرید جز اینکه مسلمان باشید ان کنتم شهداء حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك والاه ابايك ابراهيم واسماعيل وابراهيم الها واحدا ونحن له مسلمون آیا هنگامی که مرگی عقوب فرار رسید شما حاضر بودید آنگاه که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را میپرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسمائیل و اسحاق خداوندی یکتا را می‌پرستیم و ما تسلیم او هستیم تِلْكَ أُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عم كَانُوا يَعْمَلُونَ آنها امتی بودند که در گذشتند. برای آنها است آنچه که کسب کرده اند و برای شماست آنچه کسب کردید و از آنچه آنان می کردند شما پرسیده نمی شوید و قالوا او نصارا قل بل ملت و ما كان من و اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا راه یابی بگو بلکه از آیین ابراهیم که یک تا پرست بود و هرگز از مشکان نبود پیروی میکنیم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيم حقوا و والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ما به خدا ایمان آوردیم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید و به آنچه که به موسی و عیسی داده شد و به آنچه که پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان داده شده است و در میان هیچیک از آنها جدایی نمیاندازیم و ما تسلیم خدا هستیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَتَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ اَتَّمِيعُ الْعَلِيمُ پس اجران بماننده آنچه شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند از هدایت یافتند و اگر پشت کنند پس جز این نیست که آنان در ستیزند پس بهزودی خداوند تو را از شر آنها کفایت کند و اوست شنوای دانا به الله و من احتن من الله صبغه و نحن له عابدون رنگ خدایی را به و چه کسی در رنگ کردن از خداوند نیکوتر است و ما تنها او را میپرستیم قل اتحاد جوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون بگو در درباره‌ی خداوند با ما مجادله میکنید در حالی که او پروردگار ما و شماست و کردار ما از آن ما و کردار شما از آن شماست و ما او را با اخلاص پرستش میکنیم ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم من من کتم شهادتا عنده من الله و من الله بغافل عما تعملون یا میگویید که همانا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباد یهودی یا نصرانی بودند بگو شما داناترید یا خدا؟ و چه کسی ستمکار است از آن کسی که گباهی و شهادتی را که از جانب خدا نزده اوست کتمان می کند و خدا از آن چی می کنید قافل نیست تیلک امت قد خالت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا عما کانو یعملون به هر حال آنها امتی بودند که درگذشتند برای ایشان است آنچه به دست آوردهاند و برای شماست آنچه به دست آورده اید و از آنچه آنان می کرده اند شما پرسیده نمیشوید.